بیاندی شید و سروتمند شد نوشته ی ناپل اون هیل مترجم ابوزر کرمی بوگنده مازیار ربیعی فصل اول مقدمه فردی که با فکر خود را با توماس ادیسون شریک کرد درست است وقتی فکر با هدف مشخص، پشتکار و میل شدید به تبرور یافتن اینها به شکل پول یا دیگر چیزهای مادی آمیخته شود، چیز قدرتمندی شود اندکی بیش از سی سال پیش ادوین سی بارنز پی بورد که اینکه افراد واقعا فکر می کنند و ثروتمند می شوند چقدر صحت دارد. یکی از ویژگی اصلی میل بارنز این بود که این میل مشخص بود. او میخواست با ادیسون کار کند نه برای ادیسون. به دقت مشاهده کنید که او چه توصیفی از واقعیت یافتن میلش ارائه می دهد تا به شناخت بهتری از سیزده اصلی که منجر به ثروتمند شدن او می شود برسد. وقتی این میل یا بارقی فکری ابتدا به ذهن او خطور کرد او در موقعیتی نبود که با آن عمل کند. او دو مشکل داشت. آقای ادیسون را نمی و پول کافی نداشت که کرایه قطار تا شهر اورنج در نیوجرسی را بپردازد. این مشکلات کافی بودند که اکثر افراد را از تلاش برای محقق کردن میل دل سرد کنند. اما میل او یک میل معمولی نبود. او آنقدر عزم خود را جذب کرده بود که راهی برای عملی کردن میل خود پیدا کند که نهایتا تصمیم گرفت شال و کلاه کند و راه بیفتد ولی شکست نخورد. این یعنی سفر به اورنج شرقی با یک قطار باری او خود را در آزمایشگاه ادیسون معرفی کرد و اعلام کرد که آمده است که با مختره کار کند سالها بعد آقای ادیسون در مورد ملاقات خود با بارز گفت او جلوی من ایستاد، ظاهرش مثل آواره ها بود اما چیزی در حالت چهرهش بود که نشان میداد او عزم خود را جذب کرده که به آنچه به دنبال آن آمده برسد سالها تجربه با انسان‌ها به من آموخته بود وقتی کسی چیزی را آنقدر می‌خواهد که مایل است کل زندگی آیندهاش را برای آن به خطر بیاندازد قطعاً خواهد برد من فرصتی که او می‌خواست را به وی دادم چون دیدم عزم خود را جذب کرده بود که آنقدر پایداری کند تا بالاخره موفق شود رویدادهای بعدی ثابت کردند که هیچ اشتباهی صورت نگرفت آنچه بارنز جوان در آن زمان با آقای ادیسون گفت از آنچه به آن میاندیشید اهمیت خیلی کمتری داشت. خود ادیسون نیز چنین میگوید آنچه باعث شد که بارنز کارش را در دفتر ادیسون شروع کند ظاهرش نبود چون ظاهرش که قطعا علیهش بود بلکه این فکر بارنز بود که اهمیت داشت و چنین کرد. اگر اهمیت این سخن را بتوان به هر کسی که آن را میخواند نشان داد نیازی به بقیه این کتاب وجود نخواهد داشت. بارز در مصاحبه نخست نتوانست با ادیسون شریک شود. او این فرصت را پیدا کرد که با دستمزد خیلی ناچیزی در دفاتر ادیسون کار کند و کاری را که از نظر ادیسون مهم نبود انجام دهد. ولی این برای بارز از همه چی مهمتر بود چون به او فرصت میداد کالای خود را در جایی نشان دهد که شریک مورد نظرش می آن را ببیند. ماها سپری شد. ظاهراً هیچ اتفاقی نیفتاد تا بارنز هدف مورد نظر را که در ذهن خود به عنوان هدف اصلی و مشخص خود در نظر گرفته بود، حاصل کند. اما چیز مهمی در ذهن بارنز اتفاق افتاد. او دائماً میل خود را در اینکه همکار کاری ادیسون شود، افزایش میداد. روانشناسان وقتی میگویند اگر فرد واقعا برای چیزی آماده باشد، آن چیز شکل میگیرد، حرف درستی میزنند. فارز آماده بود با ادیسون شراکت کاری داشته باشد. علاوه بر این مصمم بود آماده بماند تا اینکه آنچه را که جستجو می کند به دست آورد. او به خودش نگفت اه این کار چه فایده ای داره. بهتر است نظرم را عوض کنم و شغل فروشندگی را امتحان کنم. بلکه گفت آمده هم اینجا که با ادیسون کار کنم و اگر تا آخر عمرم هم طول بکشد این کار را خواهم کرد. او جدی بود. اگر آدم یک هدف مشخص را در پیش گیرد و تمام فکر و ذکرش بشود آن هدف، داستان زندگیش عوض خواهد شد. شاید بارز جوان این را در آن زمان نمیدانست، ولی اراده قوی و پشتکارش در حمایت از میلش مقدر شده بود که همه مخالفتها را درو کند و فرصتی را که او دنبال آن بود برایش فراهم کند. وقتی فرصت فراهم شد، این فرصت به شکل متفاوت و از جهتی متفاوت با آنچه بارز انتظار داشت فراهم شد. این یکی از شگرت های فرصت است. این شگرد عادت دارد از در عقب وارد شود و غالبا به شکل بدبختی و بدشانسی یا شکست موقت ظاهر می‌شود. شاید به همین دلیل است که خیلیها از اینکه فرصت‌ها را تشخیص دهند، باز می‌مانند. آقای ادیسون در آن زمان یک وسیله اداری به نام دستگاه دیکته ادیسون ای که حالا ادینون نامیده می‌شود را تکمیل کرده بود. او این پیشنهاد را به ادیسون داد و فرصت خود را غنیمت شمرد. این دستگاه را فروخت. در فروش این دستگاه چنان موفق بود که ادیسون قرارداد توزیع و بازاریابی را در سر و سر کشور با او منعقد کرد. یکی از شعارهای مشارکت آنها در این پروژه این بود: سازنده اتیسون، نصب کننده بارنز این اتحاد کاری به مدت بیش از سی سال ادامه پیدا کرده است. بارنز با این کار خود را ثروتمند کرده است و ثابت کرده است فرد واقعا میتواند فکر کند و ثروتمند شود. من نمیدانم ارزش واقعی نقدی میل اولیه بارنز چقدر بوده است. شاید دو سه میلیون دلار برای او به ارمغان آورده باشد، اما این مقدار هر هرچقدر باشد در مقایسه با دارایی بزرگتری که به شکل شناخت مشخص کسب کرده است ناچیز است. آن شناخت از این قرار است. یک بارگیر فکری غیر ملموس میتواند به وسیله کاربرد اصول معلوم به یک همتای مادی تبدیل شود. بارز به صورت فکری با ادیسون مشارکت کرد. او با فکر ثروتمند شد. او چیزی نداشت که با آن شروع کند به جز ظرفیتی برای اینکه بداند چه می‌خواهد و اراده‌ای برای اینکه پای آن میل بیستد تا آن را محقق کند. او پولی نداشت که با آن شروع کند، تحصیلات پایینی داشت، هیچ نفوذی نداشت، اما ابتکار، ایمان و تمایل به برنده شدن داشت. او با این نیروهای غیر ملموس خود را به بزرگترین مخترعی که تا به حال زندگی کرده است تبدیل کرد. حالا بیایید به یک موقعیت متفاوت نگاه کنیم. و مردی را مورد بررسی قرار دهیم که شواهد عینی زیادی نشان میداد که او به زودی ثروتمند خواهد شد. ولی او به ثروت نرسید چون سه گام بیشتر با هدف فاصله نداشت که توقف کرد. سه گام تا رسیدن به طلا یکی از شایع‌ترین ترین علل شکست این است که فرد عادت دارد وقتی به وسیله شکست موقت مخهور می شود، اقب نشینی کند. همه ی انسان ها مرتکب این اشتباه شدند. اموی آریو داربی در دورهی که همه برای کابوش تلا هجوم آورده بودند، دچار طب تلا شد و رفت که زمین را بکند و ثروتمند شود. او هرگز نشنیده بود که طلا بیشتر از مغز آدم استخراج شده است، نه از زمین. او منطقه ای را تیرگذاری یا علامت گذاری کرد و رفت با کلنگ و بیل کار کند کار سختی بود ولی حص و تمع او برای طلا قاچانه و مسلم بود. پس از چند هفته کار پاداش او کشف سنگ معدن براق بود. او می‌بایست با دستگاه سنگ معدن را به ست بیاورد. معدن را بی سر و صدا پوشاند و به خانهش در ویلیامزبورگ ایالت مریلند برگشت. موضوع را با بستگان و چند تن از همسایگان خود که از جنس او بودند در میان گذاشت. آنها با هم پول لازم برای تهیه ها را فراهم کردند و آن را ارسال نمودند. عمو و داربی به معدن برگشتند تا روی آن کار کنند. اولین واگن سنگ معدن استخراج شد و به یک کوره ذوب فلز منتقل شد. نتایج حاصله ثابت کرد که آنها صاحب یکی از غنیترین معدنهای منطقه کلرادو شدند. چند واگن دیگر سنگ معدن شک را برطرف کرد این به معنای سودی از بود دریل ها پایین می رفتند و امید داربی و عمو به بالا بعد ناگهان اتفاقی افتاد رگه های سنگ معدن طلا ناپدید شد آنها به انتهای رنگین کمان رسیده بودند و ظرف طلا دیگر در آنجا نبود آنها همچنان میکندند و سعی میکردند دوباره رگه را پیدا کنند ولی فایده ای نداشت درخر تصمیم گرفتن دست از کار بکشند دستگاه را در اعضای چندصد دلار به یک اوراقفروش فروش بروختند و به خانه برگشتند بعضی از اوراق فروش ها احمق هستند ولی این یکی اینطور نبود او از مهندس معدن خواست که این معدن را بررسی کند مهندس گفت علت اینکه این پروژه با شکست مواجه شده است این است که صاحبان آن با خطوط گسل آشنا نبودند محاسبات او نشان داد رگه طلا به اندازه سه گام با آنچه صاحبان قبلی می کندند فاصله داشته است مرد اوراقفروش فروش میلیون دلار از سنگ مدن استخراج کرد چون خوب میدانست که قبل از اینکه تسلیم شود باید مشاوره ی تخصصی بگیرد. بخش اعظم پولی که برای این دستگاه ها هزینه شد با تلاش آریو داربی که در آن زمان مرد خیلی جوانی بود تهیه شد. استگان و همسایگان داربی پول را پرداخت کردند چون به او ایمان داشتند. او همه این پولها را پس داد هر چند سالها طول کشید. مدتها بعد یعنی وقتی آقای داربی پی برد که میلی را میتوان به طلا تبدیل کرد، zarar خود را چندین بار جبران کرد. وقتی او وارد کار بیمه عمر شد، به این نکته پی برد. داربی که فراموش نکرده بود که به خاطر اینکه سه گام از تلا دور مانده بود، ثروت هنگفتی را از دست داده بود، از تجربه‌ای که داشت در کار انتخابگیش استفاده کرد و با خود گفت سه گام تا چلا فاصله داشتم ولی وقتی از دیگران می‌خواهم که بیمه بخرند هرگز متوقف نمی‌شوم چون آنها نه داربی یکی از اعضای یک گروهی کوچکتر از پنجاه نفر است که هر سال فروش بیمه عمر آنها بیش از یک میلیون دلار است او کار خود را به درسی که از عقب نشینی در کار استخراج معدن گرفته مدیون است قبل از اینکه موفقیت وارد زندگی کسی شود قطعا او با شکست موقتی زیادی و شاید شکست های جدی مواجه می شود. وقتی شکست بر یک فرد غلبه می کند راحتترین و منطقی ترین کار کنار کشیدن و عقب نشینی است. این دقیقا کاری است که اکثر افراد می کنند. بیش از 500 نفر از موفقترین افرادی که این کشور تا به حال به خود دیده است به نویسنده این کتاب گفتند بزرگترین موفقیتشان درست یک گام فراتر از شکستی که آنها را مغهور کرده بود حاصل شده است. شکست شیادی است که حس قویی از کنایه و تنز و هیله دارد. شکست از اینکه وقتی کسی در آستانه موفقیت است زیر پای او را خالی کند لذت زیادی میبرد. درس پنجاه سنتی در پشتکاری اندکی پس از اینکه آقای داربی مدرک خود را از دانشگاه هارتناکس دریافت کرد و تصمیم گرفت از تجربه خود در استخراج تلاصوت ببرد این فرصت را پیدا کرد که در جلسه حضور داشته باشد که به او ثابت کرد نه لزوما به معنای نه نیست او یک روز بعد از ظهر داشت به عموی خود کمک میکرد که گندم را در یک آسیاب قدیمی آسیاب کند اموی او مزرعه بزرگی را میچرخاند که چند کشاورز رنگین پوست در آن زندگی میکردند. در به آرامی باز شد و یک بچه یک رنگین پوست که دختر یکی از کشاورزان بود وارد شد و نزدیک در ایستاد. عموی داربی سر خود را بالا گرفت. بچه را دید و به تندی به او گفت چه میخواهی؟ بچه به آرامی جواب داد. مادرم میگوید پنجاه سنت به ما بده. عموی داربی گفت نمیدهم حالا بوده برو برو ایتان بچه جواب داد بله آقا ولی هیچ تکانی نخورد عموی داربی کار خود را ادامه داد و چنان مشغول کار خود بود که توجه کافی به بچه نکرد تا ببیند که او هنوز نرفته است وقتی سر خود را بالا گرفت و دید که آن بچه آنجا ایستاده است بر سر او فریاد زد بهت گفتم برو خانه و وگرنه با ترک حسابت را میرسم دختر کوچولو گفت بله آقا ولی یک ذره از جای خود تکان نخورد. عموی داربی یک کیسه قله را که میخواست به داخل نافدان آسیاب بریزد به زمین انداخت یک تخته بشک را برداشت و با حالتی تهدیدآمیز به سمت بچه به راه افتاد. داربی نفس خود را در سینه حبس کرد او مطمئن بود که به زودی شاهده یک قتل خواهد بود. او میدانست عمویش طبع تندی دارد میدانست بچه های رنگین پوست نمیبایست در این قسمت از کشور از دستورات سفید سرپیچی کند. وقتی عموی داربی به نقطه ای رسید که بچه ایستاده بود، بچه به تندی یک گام به جلو برداشت به چشمهای عموی داربی نگاه کرد و با صدای لرزان خود با تمام قدرت فریاد زد، باید 50 سنت به مادرم بدهی! عموی داربی متوقف شد. یک دقیقه به او نگاه کرد، سپس تخته بشکی را روی زمین گذاشت. دست در جیب کرد، یک نیم دلاری درآورد و به بچه داد. بچه پول را گرفت و بدون اینکه از مردی که بر او غلبه کرده بود چشم بردارد عقب آمد بعد از این که او رفت عموی داربی رو یک جعبه نشست و به مدت بیش از ده دقیقه از پنجره به بیرون نگاه کرد او داشت با بخت و حیرت به زده حالی که خورده بود فکر می کرد آقای داربی هم به فکر فرو رفته بود این اولین باری بود که او دیده بود یک بچه رنگین پوست عمدن بر یک سفید پوست غلبه کند چه اتفاقی برای امویش افتاد که باعث شد خشونت خود را کنار بگذارد و مثل یک بره آرام و سر به راه شود؟ این بچه ای کوچک از چه قدرت عجیبی استفاده کرد که باعث شد او بر اربابش تسلط یابد؟ این سوالات و سوالات مشابه دیگری به ذهن داربی خطور کردند ولی او تا سالها بعد که قضیه را برای من تعریف کرد آنها را پیدا نکرد. جالب اینجاست که داستان این تجربه عجیب و غریب در همان آسیاب قدیمی و در همان جایی که عموی داروی زده حال خورده بود برای نویسنده بیان شد. این نیز جالب است که من تقریباً به مدت پانزده سال بود که به بررسی قدرتی میپرداختم که یک بچه ناغاه بیسواد و رنگین پوست را قادر میسازد تا بر یک مرد باهوش غلبه کند. وقتی در آن آسیاب قدیمی نمور بودیم آقای داربی داستان پیروزی عجیب و غریب آن بچه را تکرار کرد و در پایان پرسید از این داستان چه میفهمید؟ آن بچه از چه قدرت عجیبی استفاده کرد که اموی مرا کاملا شکست داد؟ پاسخ این سوال در اصول یافت خواهد شد که در این کتاب توصیف می شوند. پاسخ آن یک پاسخ کامل و جامع است حاوی جزئیات و دستورالعمل های کافی است که هر فردی را قادر می کند. همان نیرویی که آن بچه کوچک به صورت اتفاقی از آن استفاده کرد را درک کند و به کار بگیرد. ذهنتان را هوشیار نگه دارید تا دقیق ببینید چه قدرت عجیبی به کمک آن بچه آمد و مقداری از آن قدرت را در فصل بعدی به دست خواهید آورد. در جایی از این کتاب ایده ای را خواهید یافت که به قدرت های سرعت خواهد داد و این قدرت مقاومت ناپذیر را به نفع خودتان و تحت کنترل خودتان در خواهد آورد. ممکن است در فصل اول از این قدرت آگاه شوید یا این قدرت در فصل بعدی به ذهنتان خطور کند. ممکن است به شکل یک ایده منفرد پدیدار شود یا به شکل یک برنامه یا هدف ظاهر شود. ممکن است شما را وادار کند که به تجربه قبلی شکست برگردید و درسی را بدهد که با آن میتوانید همه آنچه با شکست از دست داده اید را دوباره به دست آورید. بعد از اینکه قدرتی که آن بچه رنگین پوست ندانسته از آن استفاده کرد را برای آقای داربی توصیف کردم، او سی سال تجربهش در فروشندگی بیمه عمر را فوراً در ذهن خود مرور کرد، و سراحتا تصدیق کرد که موفقیت وی در آن زمینه تا حد زیادی ناشی از درسی بود که او از آن بچه آموخته بود آقای داربی خاطر نشان کرد هر بار که یک مشتری بالقوه سعی کرد بدون اینکه خریدی بکند مرا با تعظیم بدرقه کند من آن بچه را در داخل آن آسیاب قدیمی تصور می کردم که با چشمهای بزرگش معترضانه ایستاده است و به خودم می گفتم من باید این معامله را به سرانجام برسانم بهترین بخش فروش هایم پس از زمانی بوده است که با افرادی مواجه شدم که به من جواب منفی دادند او اشتباهی که به این خاطر مرتکب شد که سه گام تا تلا فاصله داشت و کارها را رها کرد به یاد آورد ولی گفت آن تجربه نعمتی بود با قیافه مبدل به من یاد داد که دست از تلاش بر ندارم و هر چقدر هم شرایط سخت شد به پیش شود. این درسی بود که قبل از اینکه در هر کار بتوانم موفق شوم باید یاد بگیرم. داستان آقای داربی و عممواش بچه رنگین پوست و معدن طلا بیشک به وسیله صدها نفر خوانده خواهد شد که با فروش بیمه عمر زندگی می کنند و نویسنده دوست دارد به همه اینها بگوید داربی توانایی خود در فروش بیش از یک میلیون دلار بیمه عمر در هر سال را به این دو تجربه مدیون است. زندگی عجیب است و غالبا غیر قابل اندازه گیری هم موفقیت ها و هم شکست ها در تجربه های ساده ریشه دارند تجربه های آقای داربی به اندازه کافی معمولی و ساده هستند ولی با این حال آنها پاسخ به سرنوشت او در زندگی را دارا هستند بنابراین آنها به اندازه‌ی زندگی برای او مهم هستند او از این دو تجربه چشمگیر سود برد چون آنها را تحلیل کرد و درسی را که آنها به او آموختند یاد گرفت اما کسی که نه وقت دارد و نه گرایشی دارد که شکست را برای شناختی که منجر به موفقیت شود مطالعه و بررسی کند چطور کجا و چطور او قرار است هنر تبدیل شکست به گامهایی برای فرصت را یاد بگیرد این کتاب برای پاسخ گفتن به این سوالات نوشته شده است پاسخ این سوالات مستلزم توصیف سیزده اصل است ولی به یاد داشته باشید همچنان که این کتاب را میخوانید، پاسخ سوالاتی که شما را به تعمل در مورد عجیب و غریب بودن زندگی واداشتند جستجو می پاسخ میتواند از طریق ایده، برنامه یا هدفی که در حین خواندن به ذهنتان خطور می کند در ذهن خودتان یافت شود. اما چیزی که برای کس و موفقیت لازم دارید این است که یک ایده درست و حسابی داشته باشید. اصولی که در این کتاب توصیف می شوند حاوی بهترین و عملیترین روش ها و وسیله ها برای خلق ایده های مفید هستند. قبل از اینکه در رویکردمان در توصیف این اصول جلوتر برویم معتقدیم که حق داریم پیشنهادات مهمی دریافت کنیم وقتی ثروت شروع می‌کند به آمدن، با وفور بسیار می‌آید، طوری که آدم از خود می‌پرسد این همه ثروت، این همه سال کجا مخفی شده بود؟ وقتی به این باور معروف توجه می‌کنیم که ثروت فقط برای کسانی حاصل می‌شود که سخت و زیاد کار می‌کنند، می‌بینیم این سخن، سخن شگفت‌انگیزی است. وقتی شروع می‌کنید به فکر کردن و ثروتمند شدن، مشاهده خواهید کرد که ثروت با یک وضعیت ذهنی، با یک هدف مشخص، با کار سخت اندک یا اصلا بدون کار سخت شروع می‌شود. شما و هر کس دیگری باید به این علاقمند باشید که بدانید چطور به آن وضعیت ذهنی که ثروت را جذب خواهد کرد برسید. من 25 سال را صرف تحقیق کردم و بیش از هزار نفر را تحلیل کردم. چون من هم میخواستم بدانم ثروتمندان چطور ثروتمند شوند اگر این تحقیق را نمیکردم نمیتوانستم این کتاب را بنویسم حالا به یک حقیقت بسیار مهم توجه کنید رکود اقتصادی در سال 1929 شروع شد و با تمام قدرت به تخریب و نابودی پرداخت تا اینکه رئیس شمهور روزولت به قدرت رسید البته اندکی بعد از شروع دوره او نیز این حالت ادامه داشت سپس رکوت شروع کرد به کاهش تا اینکه به صفر رسید. همانطور که یک متخصص برق در یک سالن روشنایی چراغها را چنان کم کم زیاد می‌کند که قبل از اینکه خودتان متوجه شوید تاریکی جای خود را به نور می‌دهد، به همین ترتیب ترسی که در ذهن افراد هست به تدریج محو می‌گردد و تبدیل به ایمان می‌شود. به دقت توجه داشته باشید که به محض اینکه بر اصول این فلسفه مسلط می شوید و دستور رملاها را برای عملی کردن این اصول دنبال می وضعیت مالیتان کم کم بهبود پیدا خواهد کرد و به هرچه دست بزنید به دارایی به نفتان تبدیل خواهد شد. غیرممکن است؟ اصلا چنین نیست. یکی از نقاط ضعف اصلی بشریت آشنایی انسان معمولی با کلمه غیرممکن است. او همه قوانینی را که کارایی ندارند میشناسد. او همه کارهایی که نمی نمیتوان انجام داد را میشناسد. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دنبال قوانینی هستند که دیگران را موفق کرده و مایلند برای این قوانین هر شرطی ببندند. سالها پیش لغتنامه زیبایی خریدم. اولین کاری که با آن کردم این بود که کلمه غیر ممکن را از آن بریدم و دور انداختم. این کار غیرعاقلانه ای نبود موفقیت برای کسانی حاصل می شود که موفقیت باور می شوند شکست برای کسانی حاصل می شود که با بی‌اعتنایی به خودشان اجازه می دهند که شکست باور شوند هدف این کتاب آن است که به همه کسانی که دنبالان هستند کمک کند که هنر تغییر ذهنیت از شکست باوری به موفقیت باوری را یاد بدهد نقطه ضعف دیگری که در خیلی ها یافت می شود این است که عادت دارند همه چیز و همه کس را با برداشت‌ها و باورهای خودشان بسنجند. بعضی از افرادی که این کتاب را می‌خوانند اعتقاد خواهند داشت که هیچ کس نمی‌تواند فکر کند و ثروتمند شود. آنها نمی‌توانند از لحاظ ثروت فکر کنند چون عادات فکریشان در فقر، نیاز، بدبختی و شکست قوطه شده است. این افراد بدبخت مرا به یاد یک چینی مشهور میاندازند که به آمریکا آمد تا با شیوه های آمریکایی تحصیل کند. او در دانشگاه شیکاگو حضور پیدا کرد. یک روز رئیس دانشگاه که هارپر نام داشت این جوان شرقی را در محوطه‌ی دانشگاه دید و ایستاد تا چند دقیقه با او اختلاط کند. و از او پرسید چه ترین مشخصه آمریکایی ها را چه میداند. جوان چینی با تعجب گفت چشماتون کجه ما درباره چینیها چه می‌گوییم ما آنچرا که درک نمی‌کنیم باور نمی‌کنیم ما احمقانه باور می‌کنیم که محدودیت‌های خودمان مقیاس صحیح محدودیت‌هاست چشم دیگران کج است چون چشم آنها مثل چشم خودمان نیست میلیون‌ها نفر به موفقیت‌های هنری فورد نگاه می‌کنند و به خاطر ثروت هنگفت، شانس، نبوغ یا هر چیز دیگری که عامل خوشبختی هنری فورد بوده به او حسادت می‌کنند. شاید از هر ست هزار نفر یک نفر از راز هنری فورد خبر داشته باشد و کسانی که این راز را می‌دانند، فروتنی یا اکراهشان آنقدر زیاد است که در مورد آن صحبت نمی‌کنند و علت آن سادگی آن است. یک معامله این راز را به طور کامل مشخص خواهد کرد. چند سال پیش، فورد تصمیم گرفت موتور مشهور V8 خود را تولید کند. او تصمیم گرفت موتوری بسازد که هشت سیلندر آن کاملا در یک قالب قرار بگیرند و به مهندسان خود آموزش داد که طرحی برای این موتور تهیه کنند. طرح بر روی کاغذ طراحی شد ولی مهندسان به این نتیجه رسیدند که قالب‌ریزی یک موتور هشت سیلندره بنزینی در یک قطعه غیر ممکن است. فورد گفت هر طور شده آن را تولید کنید. آنها گفتند ولی غیر ممکن است. فورد دستور داد ادامه بدهید و کار را تا آنجا پیش ببرید که موفق شوید. مهم نیست چقدر وقت می گیرد. مهندسان ادامه دادند اگر قرار بود آنها در شرکت فورد کار کنند تنها کاری که باید می‌کردند همانی بود که فورد گفته بود شش ماه گذشت ولی اتفاقی نیفتاد شش ماه دیگر هم گذشت ولی باز هم اتفاقی نیفتاد مهندسان هر راهی که به ذهنشان می‌رسید را امتحان کردند تا دستورات او را عملی کنند ولی همه راه‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسیدند در پایان سال فورد اوزار را با مهندسان خود بررسی کرد و آنها باز هم به او اطلاع دادند که راه حلی برای عمل به دستورات او پیدا نکردند فورد گفت ادامه بدهید من آن را میخواهم و به آن خواهم رسید آنها ادامه دادند و گویی به شکل معجزه آسایی راز گشوده شد عزم جزم فورد یک بار دیگر برنده شده بود ممکن است این داستان به دقت بیان نشده باشد ولی کلیت آن صحیح است شمای که میخواهید فکر کنید و ثروتمند شوید راز میلیون های فورد را اگر می از آن استنباد کنید لازم نیست خیلی دور بروید هنری فورد یک نمونه موفق است چون اصول موفقیت را میفهمد و به کار می گیرد یکی از اینها میل است یعنی این که فرد بداند چه می خواهد. همچنان که این کتاب را می این داستان فورد را به یاد بیاورید و خطوطی را که راز این موفقیت عظیم در آنها توصیف شده است را نشان دهید. اگر بتوانید این کار را بکنید، اگر بتوانید انگشتتان را روی گروه خاصی از اصولی که هنری فورد را ثروتمند کرد بگذارید، می توانید او را تقریبا در هر کار یا حرفهی که برای آن مناسب باشید تکرار کنید. شما ارباب سرنوشتتان و فرماندهی روحتان هستید چون وقتی هنلی این جملات پیامبرگونه را که من ارباب سرنوشتم هستم من فرماندهی روحم هستم را نوشت باید ما را آگاه میکرد که ما به این خاطر ارباب سرنوشتمان و فرماندهی روحمان هستیم که قدرت داریم افکارمان را کنترل کنیم او باید به ما میگفت جوی که این زمین کوچک در آن شناور است و ما در آن حرکت میکنیم و وجود داریم شکلی از انرژی است که با لرزشی که به شکل باورنکردنی زیاد است حرکت میکند و آن جو پر از شکلی از قدرت جهانی است که خود را با ماهیت افکاری که در ذهنمان داریم سازگار میکند و به شیوه های طبیعی بر ما تاثیر میگذارد تا افکارمان را به معادل فیزیکیشان تبدیل کنیم اگر شاعر این حقیقت بزرگ را به ما گفته بود ما میدانستیم که چرا ما ارباب سرنوشتمان و فرمانده روحمان هستیم او با تاکید زیاد باید به ما می میگفت این قدرت تلاش نمی کند که بین افکار مخرب و افکار سازنده تمایز قائل شود و با همون سرعتی که روی افکار مربوط به ثروتمند شدن تأثیر خواهد گذاشت، ما را وادار خواهد کرد که افکارمان را به صورت فیزیکی محقق کنیم. او این را نیز باید به ما میگفت که مغز ما جذب افکار قالبی شده است که در ذهن داریم و این آهنرباها با وسیله‌ای که هیچ کس با آن آشنا نیست، نیروها، افراد و شرایط زندگی که با ماهیت افکار قالبمان سازگار هستند را جذب ما کند او باید به ما میگفت که قبل از اینکه بتوانیم ثروت را به مقدار فراوان انباشت کنیم باید با میل شدید به ثروت به ذهنمان خاصیت آهنربایی بدهیم باید آنقدر پول باور شویم که میل به پول ما را سوق دهد که برنامه های مشخصی را برای دستیابی به آن تدوین کنیم اما هنلی یک شاعر است نه یک فیلسوف یک حقیقت بزرگ را به شکل شعر بیان کرد و با بیان این کار خود را راضی کرد و تفسیر معنای فلسفی آن را به عهدهی آیندگان گذاشت این حقیقت اندکندک خود را نشان داده است تا اینکه حالا مشخص شده است اصولی که در این کتاب توصیف شده راز تسلط بر سرنوشت اقتصادیمان را در خود دارند حالا ما آماده ایم که اولین اصل از این اصول را بررسی کنیم روحیه مبتنی بر گشاده نظر بودن را حفظ کنید و همچنان که مطالعه می کنید به یاد داشته باشید این اصول ابداع یک نفر نیستند این اصول از تجارب زندگی بیش از 500 نفری جمعوری شده است که واقعا ثروت خیلی زیادی جمعآوری کردند کسانی که با فقر، با تحصیلات اندک و بدون نفوذ شروع کردند این اصول برای این افراد جواب داد می توانید آنها را به کار بگیرید تا به صورت پایدار به نفع خودتان نیز باشد انجام این کار را ساده خواهید یافت نه سخت قبل از آنکه فصل بعدی را بخوانید، میخواهم بدانید که این فصل اطلاعاتی مبتنی بر واقعیات را نشان می که میتواند کل سرنوشت مالیتان را به راحتی تغییر دهد زیرا تغییرات فوقلادهی در افرادی که ذکر خواهند شد ایجاد کرد می این را نیز بدانید که رابطه بین این دو فرد و خودم چنان است که حتی اگر خواسته باشم نمیتوانم واقعیت واقعیتها را تغییر دهم یکی از آنها دوستی بوده است که به مدت تقریبا 25 سال نزدیک ترین دوستم بوده و دیگری پسر خود من است موفقیت غیرمعمول این دو فرد یعنی موفقیتی که عمدتا به اصلی نسبت داده می شود که در فصل بعد توصیف شده است این نمونه ها را به عنوان ابزاری برای تأکید بر قدرت دامندار این اصل بسیار توجیه می کند. حدود پانزده سال پیش خطابه افتتاحی کالج سالم را در منطقه سالم در ویرجینیا جنوبی ایراد کردم. با چنان شدت و حدتی بر اصلی که در فصل بعدی توصیف شده است تاکید کردم که یکی از شاگردانی که داشت فارق و تحصیل میشد آن را از ازان خود نمود و آن را بخشی از فلسفهی خود کرد آن مرد جوان حالا از نمایندگان کنگره است و نقش مهمی در دولت فعلی دارد درست قبل از اینکه این کتاب را برای ناشر بفرستم او نامهی برای من نوشت او در این نامه نظر خود را سراحتا در مورد اصلی که در فصل بعد ذکر خواهد شد بیان کرده بود من هم تصمیم گرفتم نامه او را به عنوان مقدمه‌ای برای آن فصل چاپ و منتشر کنم این نامه این حس را به آدم می‌دهد که پاداش‌هایی در راهند ناپلئون عزیزم مدتی که نماینده ی کنگره بودم نسبت به مشکلات مردان و زنان بینش و دیت پیدا کردم حالا دست به قلم بردم تا پیشنهادی بدهم که شاید برای هزاران فرد ارزشمند و مفید باشد. با ارز پوزش باید تصریح کنم که این پیشنهاد اگر روی آن کار شود به معنای سالها تلاش و کار و مسئولیت برای شماست. ولی من قوت قلب پیدا می کنم که این پیشنهاد را ارائه دهم چون از عشق عظیم شما به خدمت مفید خبر دارم. در سال 1922 شما خطابه افتتاحی را در کالج سالم ایراد کردید. در آن زمان من از کسانی بودم که داشتند فرق و تحصیل می شدند. در آن خطابه شما ایدهی ای در ذهن من کاشتید که این فرصت را فراهم آورده که حالا به مردم کشورم خدمت کنم و تا حد زیادی عامل هر موفقیتی خواهد بود که در آینده خواهم داشت. پیشنهادی که در ذهن دارم این است که خلاصه و اسارهی خطابه ای را که در کالج سالم ایراد کردید در یک کتاب بیاورید و به این ترتیب به آمریکایی ها این فرصت را بدهید که از سالها تجربه و معاشرت شما با افرادی که با عظمتشان آمریکا را ثروتمندترین کشور در جهان کرده اند سود ببرند مثل اینکه دیروز بود که توصیف عالی از روشی ارائه دادید که هنری فورد با آن به اوج موفقیت رسید هنری فوردی که تحصیلات پایینی داشت، یک دلار نداشت و دوستان با نفوذی هم نداشت. سپس حتی قبل از اینکه شما سخنرانیتان را فراموش کنید، تصمیم گرفتم که حتی اگر مجبور باشم بر مشکلات متعددی غلبه کنم، جایی برای خودم فراهم کنم. تا امسال و چند سال آینده هزاران جوان تحصیلات خود را تمام خواهند کرد. هر از آنها دنبال چنان پیام عملی و دلگرم کنندهی مثل پیامی که من از شما دریافت کردم هستند. آنها میخواهند بدانند به کجا رو کنند، چه کار کنند تا زندگیشان را شروع کنند. شما می توانید جواب این سؤالها را به آنها بدهید چون شما کمک کرده اید که مشکلات خیلی ها حل شود. اگر راهی وجود داشته باشد که بتوانید چنان خدمت بزرگی بکنید، من به شما پیشنهاد می‌کنم که یکی از چارت‌های تحلیل فردیتان را در هر کتاب بگنجانید تا خریدار کتاب از فهرستهای مربوط به خودش بهره ببرد و همانطور که سالها پیش به من نشان دادید به اون نیز نشان دهید که دقیقاً چه موانعی در مسیر موفقیت قرار دارند. چنین خدمتی تصویری را در اختیار خوانندگان کتابتان قرار می‌دهد. که کامل و نسبت به معایب و محاسن آنها خالی از تعصب است و برای آنها به معنای تفاوت بین موفقیت و شکست است این خدمت گران قیمت است ها نفر در حال حاضر با مسئله برگشت به حالت قبلی به علت رکود اقتصادی مواجه هستند و وقتی میگویم میدانم این افراد صادق از فرصت ایجاد شده برای بیان مسائلشان و دریافت پیشنهادهای شما برای راه حل استقبال می کنند از روی تجربه سخن میگویم شما مشکلات کسانی را که با ضرورت شروع دوباره مواجه هستند میدانید امروزه هزاران نفر در آمریکا هستند که دوست دارند بدانند چطور میتوانند ایده ها را به پول تبدیل کنند. کسانی که بدون بنیه مالی باید از صفر شروع کنند و ضررهایشان را جبران کنند. اگر کسی باشد که بتواند به آنها کمک کند، آن فرد شما هستید. اگر این کتاب را چاپ میکنید، دوست دارم اولین جلد را که از چاپخانه خارج میشود، خودتان به من بدهید. با بهترین آرزوها سخن مرا باور کنید ارادتمند شما جنینگز راندول